کتاب فقط برای تفریح فصل دوم تولد یک سیستم آمل بخش دهم ده نوشته لینوس و دیوید دیاموند مینیکس در مقابل لینوکس همه توجهات هم مثبت نبود هرچند که هیچ وقت اهل جنگ و دعوا نبودند اما وقتی اندروتان پاو شروع به حمله به سیستم آملی کرد که در حال جلو افتادن از سیستم آمل خودش بود باید از سیستم آمل و مردانگی هم دفاع می کردم. از آنجایی که ماها نرد هستیم همه چیز با ایمیل پیش رفت. البته چه کسی می تواند به او به خاطر عصبانیتش ایراد بگیرد؟ قبل از اینکه گروه خبری لینوکس تأسیس شود، من دائما از طریق گروه خبری مینیکس اطلاعیه های لینوکس را پخش می کردم و از همانجا هم افراد علاقه من را پیدا کردم. چرا اندرو باید از این جریان راضی باشد؟ برای تازه کارها بگویم که تانه از این ناراضی بود که من از قواعد گروه خبریش تخلف کرده بودم. در عین حال بدون شک از این هم ناراحت بود، که سیستم آملش دارد زیر سایه یک سیستم آمل جدید قرار میگیرد که به تازگی از جنگل سرد فنلاند آمده و توسعه دهندگان زیادی مشغول جذب شدن به آن هستند. در نهایت هم اینکه او نظر متفاوتی درباره شیوه صحیح نوشتن سیستم آمل ها داشت. آن روزها اندرو جزو آن دسته از دانشمندان کامپیوتر بود که میگفتند، گرایش میکروکرنل بهترین شیوه طراحی سیستم عامل است. وی مینیکس را هم به همین روش طراحی کرده بود. وضع آموآبا که سیستمی بود که آن روزها رویش کار می میکرد نیز به همین منوال بود. این شیوه غالب این شیوه غالب اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 بود. اما موفقیت لینوکس مشغول تازییف این ایده بود. به همین دلیل اندرو به فرستادن ایمیل‌های دوست نداشتنی ادامه داد. نظریه پشت میکروکرنل این است که سیستم عامل ذاتا چیز پیچیده ای است. و در نتیجه باید سعی کنیم با بخش بخش کردن آن از پیچیدگی آن بکاهیم. پایه ایده میکروکرنل این است که کرنل باید هسته باشد. به عبارت دیگر، کرنل باید حداقل کار ممکن را انجام بدهد. وظیفه اصلی کرنل برقراری ارتباط است. هر چیزی که کامپیوتر بخواهد ارائه بدهد، سرویس هایی است که از طریق کانال های ارتباطی می شود به آنها دست پیدا کرد. در گرایش میکروکرنل هر مسئله باید آنقدر کوچک شود تا دیگر هیچ بخش پیچیده‌ای در آن باقی نماند. به نظر من این کار احمقانه میآید. درست است که هر بخش ساده کاملا ساده است اما ارتباط این بخش های ساده بسیار پیچیده تر از خالتی که می شود که این سرویس ها به خود کرنل اضافه می شودند. مانند لینوکس به مغز فکر کنید. هر بخش مغز بسیار ساده است ولی روابط بسیار پیچیده این اجزا می تواند یک سیستم بی نهایت پیچیده را ایجاد کند. این همان مشکل کلاسیک بزرگتر بودن کل از جزء است. اگر چیزی را برداری و نصف کنید و بعد ادعا کنید که هر نیمه پیچیدگی نصف پیچیدگی کل را دارد، پیچیدگی روابط بین این دو نیمه را نادیده گرفته اید ایده پشت میکروکرنل این است که کرنل را به پنجاه قسمت مستقل تقسیم کنید و در نتیجه پیچیدگی هر قسمت بشود یک پنجاهم پیچیدگی کرنل اولیه. اما چیزی که در نظر گرفته نمی شود، این واقعیت است که پیچیدگی روابط بین این اجزا پیچیده تر از کل سیستم اولی است و تازه این در حالی است که اجزا هم آنقدرها ساده نشدهاند. این اصلی ترین استدلال علیه میکروکرنل است سادگی که به دنبالش هستید یک توهم است لینوکس بسیار کوچکتر و بسیار ساده تر کار را شروع کرد و هیچ وقت هم ماژوله شدن را اجبار نکرد در نتیجه می توانستید هر کاری که می خواهید را بسیار سرراستر از مینیکس پیاده سازی کنید. یکی از مشکلات پایهای من با مینیکس این بود که اگر پنج برنامه مختلف را در مینیکس اجرا می کردید و آنها میخواستند به پنج فایل مختلف دسترسی داشته باشند کل کار به شکل سری انجام می شد. به عبارت دیگر پنج پروسه داشتید که به سیستم فایل پیام می دادند ممکن است من از فلان فایل بخانم و بخشی از سیستم عامل که مسئول پاسخ به این درخواست بود یکی از آنها را انتخاب می کرد و جوابش را میداد و بعد سراغ درخواست بعدی می رفت. تحت لینوکس که کرنلی است مونولیتیک در این حالت پنج پروسه خواهید داشت که هر کدام فراخانی سیستمی خود را برای کرنل می فرستند کرنل، باید بسیار دقت کند که این پنج درخواست با هم قاطی نشوند ولی در عوض میتواند به این پنج پروسه و هر چند پروسه دیگر که نیاز داشته باشد امکان دسترسی دائمی به فایلها را بدهد. مشکل دیگر مینیکس این بود که علا رغم در اختیار داشتن متن آن بنابر توافق نامهش نمی توانستید کار چندانی با آن متن انجام دهید. مثلا بروس ایوانز را در نظر بگیرید که تغییرات امدهی در مینیکس داده بود و آن را بسیار کاراتر کرده بود ولی اجازه نداشت این تغییرات را به خود مینیکس اضافه کند بلکه باید همه چیز را به صورت وصلهی جانبی ارائه می کرد. از نقطه نظر علمی این یک فاجعه است مثلا امکان ندارد بروس یک نسخه قابل اجرا از تغییراتش ایجاد کند و به مردم اجازه بدهد تا به سادگی از نسخه‌ای بهتر استفاده کند مردم به جای این کار مجبور هستند برای رسیدن به سیستمی قابل استفاده روندی چند مرحلهی را قدم به قدم طی تیگونند و این کار برای بسیاری از مردم غیرعملی است. اوایل 1992 تنها باری بود که کار به ارتباط مستقیم با آندرو تانباوم کشید. فرض کنید یک صبح یخبندان به سیستم لاگین کنید و با نسخهی ویرایش نشده از این پیام مواجه شوید. از اندی تانبام به گروه خبری کامپ.وس.منکس موضوع دوره لینوکس گذشته است تاریخ 29 جانویه 92 ساعت 12 و 12 دقیقه و 50 ثانیه جی دو هفته ای در آمریکا بودم و در نتیجه وقت نکردم در مورد لینوکس نظرم را بگویم البته اگر بودم هم حرف چندانی برای گفتن نداشتم ولی حالا به هر دلیلی که باشد حرفهایی دارم که باید بزنم همانطور که اکثر شما می دانید، مینیکس برای من یک سرگرمی شخصی است چیزی که بعد از ظهرها اگر از نوشتن کتاب خسته شده باشم و جنگ یا انقلاب یا بحث مهمی در سنا هم نباشد که مستقیما از ان پخش شود به سراغش میروم. شغل اصلی من استادی دانشگاه و تحقیق در حوزه سیستم عاملها است بنا به شغلم حس می کنم تا حدی میدانم که سیستم عامل ها در یکی دو دهه آینده به کدام سمت خواهند رفت در دیدگاه من دو نکته مهم خود نمایی میکند یک سیستم های میکروکرنل در برابر مونولیتیک ها بیشتر سیستم عامل های قدیمی مونولیتیک هستند یعنی کل سیستم آمل یک فایل بزرگ A. out اوت است که در حالت کرنل اجرا می شود. این فایل اجرایی حاوی مدیر پروسه ها، مدیر حافظه، سیستم فایل و تمام دیگر اجزای مورد نیاز است. مثال هایی از این گونه عبارت هستند از یونیکس، امستاس، وی امس، اموی، ایس و مالتیکس و بسیاری دیگر. در مقابل سیستم های میکرو کرنل را داریم، که در آنها اکثر عملیات سیستم به شکل پروسه های مستقلی در خارج از کرنل پیاده سازی می شود این پروسه ها برای ارتباط از سیستم پیامرسان استفاده می کنند وظیفه کرنل برقراری این سیستم پیامرسانی، رسانی مدیریت ها، مدیریت سطح پایین پروسه ها و احتمالا ورودی و خروجی است نمونه هایی از این ایده عبارت هستند از RC4000 AMOABA کروس، ماخ و ویندوز انتی که هنوز منتشر نشده است. هرچند می توانم درباره مزایا و معایب هر یک داستان هزار و یک شب تعریف کنم، اما به گفتن همین اکتفا می کنم که در بین کسانی که واقعا به طراحی سیستم آمل اشتغال دارند، بحث تمام شده است. میکروکرنل برنده شده. مینیکس یک سیستم آمل میکروکرنل است که در آن مدیریت حافظه و سیستم فایل دو پروسه مجزا هستند که خارج از کرنل اجرا می شوند. درایورهای ورودی و خروجی هم پروسه های خاص خودشان را دارند. لینوکس یک سیستم به سبک مونولیتیک است. یک قدم بزرگ به عقب، قدمی به دهه 1970. دو قابلیت انتقال. مینیکس طراحی شده تا قابلیت انتقال داشته باشد و تا به حال هم از سری اینتل گرفته تا 680X0، آتاری، آمیگا، مکینتاش و اسپارک و NS32016 آن را اجرا می کنند. لینوکس شدیدن به 80X86 وابسته است و جای دیگری ندارد که برود. البته اشتباه نشود. من به خاطر لینوکس خوشحالم چون تمام افرادی که سعی میکنن مینیکس را به یک BSD یونیکس تبدیل کنند را از من دور می کند. به هر حال با کمال صداقت بگویم که به تمام کسانی که به دنبال یک سیستم عامل مدرن و آزاد هستند پیشنهاد می کنم که به دنبال یک سیستم میکروکرنل و قابل انتقال باشند مثلا گنو یا چیزی شبیه به آن اندی تا نبا می که باید از شرافتم دفاع کنم پس نوشتم از لینوس بندیک توروالد. موضوع پاسخ به دوره لینوکس گذشته است. تاریخ 29 ژانویه 92 ساعت 23 و 14 دقیقه و 26 ثانیه سازمان دانشگاه هلسینکی. خب با چنین موضوع بحثی فکر کنم من هم باید چیزی بنویسم. پیشاپیش از خوانندگان مینیکس از اینکه باز هم درباره لینوکس خواهند خواند، عذر میخواهم. ترجیح میدادم در این تله نیفتم.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 چیزی که بعد از زورها اگر از نوشتن کتاب خسته شده باشم و جنگ یا انقلاب یا بحث مهمی در سنا هم نباشد که مستقیما از CNN پخش شود به سراغش میروم شغل اصلی من استادی دانشگاه و تحقیق در حوزه سیستم ها است. واقعا به نظرتان این دلیل معقولی برای توضیح کمبودهای مینیکس است؟ متاسفم ولی باختی. من بحانه های خیلی بیشتری دارم ولی لینوکس در همه زمینه ها از مینیکس سرتر است. تازه در این باره که بهترین بخش مینیکس توسط بروس ایوانز نوشته شده حرفی نمیزنه. جواب اول شما مینیکس را به عنوان یک سرگرمی شخصی مطرح می‌کنید، نگاه کنید ببینید چه کسی دارد از مینیکس پول در و چه کسی لینوکس را متجانی پخش کرده. هنوز هم میگویید مینیکس یک سرگرمی شخصی است مینیکس را به رایگان در اختیار مردم بگذارید و یکی از بزرگترین انتقادهای من مرتفع می شود در اصل این لینوکس است که سرگرمی من است البته یک سرگرمی بسیار جدی و ارزشمند من هیچ پولی از لینوکس در نیاورده و حتی بخشی از یک پروژه دانشگاهی هم نبوده است آن را فقط و فقط در وقت آزاد خودم و فقط و فقط روی ماشین خودم گسترش دادم جواب دوم شغل شما استادی دانشگاه و تحقیق است این یک دلیل خوبی است برای صدمات مغزی که مینیکس از آن رنج میبرد فقط میتوانم امیدوار باشم و انتظار داشته باشم که آموهبا به گندی مینیکس نباشد یک سیستم های میکروکرنل در برابر مونولیتیکها. ها درست است لینوکس؟ مونالیتیك است و میپذیرم که میکروکرنل ها زیباتر هستند اگر موضوع بحث اینقدر حساس نبود شاید با بخش زیادی از نوشته های شما موافقت میکردم از دیدگاه نظریه و زیباشناسی لینوکس بازنده میدان است اگر پروژه کرنل گنو بهار گذشته آماده شده بود من اصولا زحمت شروع این پروژه را هم به خودم نمیدادم اما واقعیت این است که آماده نبود و هنوز هم نیست برگ برنده لینوکس آماده بودن آن است مینیکس یک سیستم عامل میکروکرنل است پاک شد اما نکته را گرفته اید لینوکس یک سیستم به سبک مونولیتیک است اگر این تنها شرط برای خوب بودن کرنل بود حق با شما بود مسئله ای که ذکر نکرده اید این است که مینیکس به خوبی از عهده وظایف میکروکرنل بر نیامده و با مالتیتسک واقعی داخل کرنل مشکل دارد. اگر من سیستم عاملی نوشته بودم که با مالتیتسک مشکل داشت به این راحتی بقیه را محکوم نمیکردم. در واقع بیشترین تلاش من این بود که دیگران این شکست مفتزه را نبینند. بله، میدانم که مالتی هایمالتیتسک برای مینیکس وجود دارند ولی به هر حال آنها هک هستند و برونس اوانز هم خواهد گفت که با تمام نسخه ها هم به خوبی سازگار نیستند. دو. قابلیت انتقال قابلیت انتقال مال آنهایی است که نمیتوانم های جدید بنویسند خودم همین الان نیمه شوخی نیمه جدی واقعیت این است که لینوکس بیشتر از مینیکس قابلیت انتقال دارد میگویید چطور باید بگویم نه به آن معنایی که شما برداشت کرده اید. منظورم این است که من لینوکس را تا جایی که میتوانستم بدون داشتن استانداردهای پوزیکس جلو چشمم سازگار با استانداردها نوشتم. انتقال نرم افزارها به لینوکس معمولا بسیار ساده تر از انتقال آنها به مینیکس است. میپذیرم که قابلیت انتقال چیز خوبی است، ولی فقط وقتی که این کار با معنا باشد. تلاش برای کاملا قابل انتقال کردن یک سیستم عامل ایده ای نیست. پیروی از یک API قابل انتقال کافی است. ایده زیربنایی سیستم عامل استفاده از توانمندی های سخت افزار است. در این مخفی کردن آنها پشت لایی از فراخانی های سطح بالا. این دقیقا همان کاری است که لینوکس می کند. به کار گرفتن مجموعی وسیحتر از دستورات 386 نسبت به آن چیزی که دیگر کرنل ها استفاده می کند. شکی نیست که این کار قابلیت انتقال کرنل را پایین می‌آورد، اما در عوض طراحی را بسیار ساده می کند. یک به ساده و دلیل وجودی لینوکس، این را هم قبول دارم که لینوکس تا نهایت غیرقابل انتقال بودن رفته است. من ژانویه قبل 386 هم را گرفتم و لینوکس تا حدی ای بود تا ریزکاری های آن را یاد بگیرم. اگر واقعا یک پروژه مستقل بود احتمالا بخشهایی را قابل انتقال تر می نوشتم. البته به هیچ وجه دنبال بهانه آوردن نیستم و از فعلی نتیجه طراحی اولی هم بوده، و آوریل قبل که پروژه را شروع کردم فکر نمی کردم. کسی روزی بخواهد از آن استفاده کند. خوشحالم بگویم که اشتباه کرده بودم و از آنجایی که متن برنامه به شکل آزاد در دسترس همه قرار دارد هر کسی که بخواهد می تواند آن را به هر چیزی که بخواهد پورت کند. هرچند که کار ای نخواهد بود. لینوس معذرت می خواهم اگر گاهی زیادی تونت هستم. اگر هیچ چیز دیگری نداشته باشید، مینیکس به اندازه کافی خوب است. اگر 5 یا 10 تا 386 اضافه داشته باشید که من ندارم، آمو ابا هم ممکن است خوب باشد. من معمولا وارد دعواها نمی ولی وقتی بحث لینوکس است کمی حساس می شدم. این داستان چند قسمت دیگر هم داشت و یکی از معدود دعواهای اینترنتی من بود و شما متوجه نکته اصلی شدید. حتی از همان اولین روزها هم صداهای مخالفی وجود داشتند شاید هم نکته اصلی این باشد که وقتی وارد یک فروم الکترونیک میشوید، مواظب باشید چون اشتباهات املایی و انشایی شما تا ابد الدهر باقی خواهد ماند من و لینوس خانواده‌هایمان را در کمپ گذاشتیم و یک روز اصر آخرهای جولای را با هم در گروور هات اسپرینگ گذراندیم درست در جایی که به گفته لینوس توروالدز که لحظه‌ای برای نگاه کردن به آن مکس کرده بودم، گویی از وسط صفحات تبلیغی کوتاک در مجله نشنال جغرافیک بیرون افتاده بود. آتشی در کنار یک جوی کوچک روشن کردیم و از لینوکس درخواست کردم تا برایم از زندگیش تعریف کند. به خصوص در دوره‌ای که درخواست برای لینوکس در حال افزایش بود و کاربران آن داشتند از محدوده خوانندگان گروه خبری مینیکس فراتر می‌رفتند. باید فوقلاده بوده باشد این نظر من بود و ادامه دادم که سالها در یک اتاق و پشت کامپیوترت بودی با ارتباطی بسیار کم با دنیای خارج از سی کامپیوترت حالا یهو از هر گوشه و کنار دنیا مردم متوجه کار عظیم تو شده بودند و تو شده بودی مرکز این توجه همه داشتند به تو جواب این بود تاجایی که یادم است جریان برایم چندان مهم نبود واقعاً حس می کنم مهم نبود. در اصل این برخورد همان چیزی بود که دور از انتظارم هم نبود. چون به هر حال مشکلی وجود داشت که باید حل می شد. از این نظر زیاد به جریان فکر می کردم ولی اهمیت عجیبی برایم نداشت. ماجرا بیشتر از نظر معنوی برایم بزرگ بود. لینوس ادامه داد مسئله جذاب برایم این بود که آدم های زیادی به من انگیزه میدادند تا این پروژه را پیش ببرم. اوایل فکر می کردم پایان این پروژه برایم متصور است. پایانش جایی بود که پروژه در آن تمام می شد. اما این لحظه هیچ وقت نرسید. چون آدمها دائماً به من انگیزه ادامه کار می دادند. آنها خوراک فکری برایم فراهم می و من ادامه می دادم. حیجان کار ادامه داشت و در غیر این صورت من سراغ پروژه دیگری می رفتم. این شیوه کار من بود که تا وقتی کار مفرح بود، جلو می رفتم به هر حال این مسئله دقدقهی فکری من نبود به نظرم به دماغم یا اینجور چیزها بیشتر فکر می کردم تا به لینوکس چند هفته بعد در مرکز خرید استنفورد بودیم جایی که لینوکس مشغول بررسی کفش های دو و انتخاب یک کفش مناسب برای خود بود فروشنده پرسید معمولا در هفته چند کیلومتر می دوید لینوکس لبخند زد. در طول ده سال در مجموع یک کیلومتر هم ندویده بود. ورزش در زندگی لینوس جایی نداشت. اما وقتی سرحالتر بود اعتراف کرد که بدش نمیآید چند کیلوی وزن کم کند. با دست که روی شکمش میزک گفت احتمالا تاو به شما اصرار کرده که من را به ورزش ببرید تا این شکم را از دست بدهم. به شوخی جواب دادم بله و به همسرت بگوی که چک این ماه هنوز نقد نشده. مشغول دور زدن مجموعه استنفورد با ماشین بودیم تا جای مناسبی برای پارک پیدا کنیم. شاید بعد از نیم ساعت کمی نرمش کردیم و از راه گلی که حاصل خوش کردن دریاچه بود شروع به دویدن به سمت هدف کردیم. یک آنتن بشقابی بزرگ که پشت درختها پنهان بود. با بدجنسی سرعت نسبتا زیادی برای دویدن انتخاب کردم ولی در کمال تعجب دیدم که لینوس، حدود یک مایل درست پشت من آمد. بعد نفسش برید و چند دقیقه بعد هر دو روی زمین چمنی که کنار دریاچه بود ولو شدیم. پرسیدم برخورد خانواده با اتفاقات مرتبط با لینوکس چطور بود؟ باید هیجان زده شده باشند. جواب داد فکر کنم اصولا کسی متوجه جریان نشد. البته نه اینکه کسی توجهی نکند. ولی خب من همه عمرم برنامه نویسی کرده و این ماجرا هم از نظر آنها هیچ فرقی با بقیه زندگیم نداشت. اما به هر حال باید در این باره با آنها حرف زده باشی. مثلا یک بار که پدرت داشته با ماشین تو را به جایی می رسنده ممکن است گفته باشی اوه پدر شاید باور نکنید ولی من یک کار جالب با کامپیوترم کردم که این روزها صدها نفر دارند از آن استفاده می کنند. جواب قاطع است. نه. لینوس ادامه میدهد. اصلا حس نکردم که باید در این مورد با دوستان یا خانواده صحبت کنم. احساس میکردم که نباید در این مورد به کسی اصرار کنم. یادم هست که لارس ورزنیوس در همان دوران تصمیم گرفته بود تا زنیکس که نسخه شرکت اسکوز از یونیکس بود را بخرد. یادم هست که سعی میکرد دلایلی مثل این بیاورد که البته از این کار من اشتباه برداشت نکنی ها. تا جایی که یادم هست من اصلاً ناراحت نشده بودم. بعدها سوئیچ کرد به لینوکس ولی این جریان برای من مهم نبود برای من همین که مردم از آن استفاده می کردند جذاب بود و گرفتن پاسخ هم خوشحالم می کرد. اما در عین حال اینها برایم چندان مهم نبود من احساس نمی کردم که باید کلام مقدس را ترویج کنم از اینکه مردم از کد نوشته شده توسط من استفاده کنند خوشحال می شدم. اما هیچگاه این تصور را نداشتم که پخش کردن آن در دنیا مهمترین کار روی کره زمین است. اینکه که چند صد نفر از کد من استفاده کنند، باعث نمیشد. احساس کنم کار بسیار مهم می کرده مسئله بیشتر مفرح بود تا مهم. این روزها هم همین احساس را دارم. نمی توانستم ناباوریم را پنهان کنم. پرسیدم، پس احساس می کردین نیازی نیست به پدر و مادر و دوستانت در این مورد حرفی بزنی؟ در مورد چیزهایی که در حال اتفاق افتادن بود هیجان نداشتی؟ پیش از جواب دادن چند ثانیه ای مکس کرد. اصولا یادم نیست که آن روزها احساس داشتم یا نه. لینوس یک ماشین جدید خریده است. یک بی ام 3 با دو صندلی و سقف کنار رونده. به قول خودش این یک ماشین مفره است. رنگ ماشین آبی متالیک است. بهترین رنگ برای ماشین های بازی پسر بچه ها. دلیل انتخاب این رنگ این بود که بی اموی زتری رنگ زرد برراغ نداشت وگرنه انتخاب اولش زرد براق بر بود میگوید که بی و زرد معمولی مثل ادرار میماند. چندین سال است که پونتیاکش را در نزدیکترین فاصله به در ورودی ترانسمتا پارک کرده ولی این ماشین را جایی دورتر پارک می کند. تا در سایه باشد و از پنجره هم دیده شود حالا وقتی لینوس پشت کامپیوتر است می تواند از پنجره قربان صدقه ماشین جدیدش برود. تقریبا یک سال قبل بود که با ماشین روباز مستانگی که من اجاره کرده بودم با هم از سانتا کروز بالا می رفتیم. یادم می افتد که آن روز لینوس از من خواست تا بعد از بیرون آمدن از سنا کمی در پارکینگ بمانیم و ماشین های اسپورت را نگاه کنیم. حالا داریم از همان ها بالا می رویم. اما این بار در ماشین اسپورت لینوس از جاده هیفده که دور میزند لبخند دارد من میگویم استحقاقش را داشتی و کلی لیسیدی موسیقی از داشبورد بیرون میآورم میپرسم کدام آهنگ پینک فلوید را میخواهد و او میگوید با این آهنگ ها بزرگ شدم وقتی بچه بودم هیچ وقت آهنگ نخریدم ولی جنیس جاپلین همیشه در خانه بود شاید مادرم میگذاشت هرچند که میدانم دانم طرفداره، الویس کاستلو بود. اصر جمعه است. یکی از آن اصر جمعه های درخشان کالیفرنیا که همه حسها را غرق لذت می کند. آسمان نیلگون برای چشم ها، آفتاب گرم برای پوست، رایحه اوکالیپتوس های کوهی، مزه شیرین هوا و موسیقی پینک فلوید از بلنگوهای تقویت شده. احتمالا برای کسانی که سبقت می گیرند، ما جوانهای قدیمی هستیم که در ماشین آخرین مدلمان راک کلاسیک گوش می دهیم. البته ماشینهای اندکی هستند که از BMW Z3 لینوس سبقت بگیرند. ماشین را در کنار اتوبان و در ردیف ماشینهایی که اکثران از ماشین لینوس قدیمیتر هستند کمی بالاتر از سانتا کروز پارک می کنیم و پیاده راهمان را به سمت ساحلی که معمولا جمعیت چندانی در آن نیست ادامه می دهیم. در آفتاب گرم روی حوله ها پهن می شویم و قبل از درآوردن ضبط صوت از کوله پشتی چند دقیقهی صبر می کنیم. دوباره از او می خواهم تا درباره لینوکس روزهای اول لینوکس صحبت کند. روی شنها مربعی می کشد تا نمایانگر اتاقش باشد و بعد جای کامپیوتر و تخت خواب را مشخص می کند. می توانستم از تختخواب بیرون بخزم و ایمیل هایم را چک کنم و همین حرکت را با انگشتش نشان می دهد ادامه می دهد که بعضی روزها اصلا از خانه خارج نمی شدم ایمیل هایم را چک نمی کردم تا ببینم چه کسی به من ایمیل زده. بیشتر دنبال این بودم که ببینم فلان مشکل حل شده یا نه. شبیه این بود که چک کنم ببینم چه چیز جذابی منتظر من است یا اگر مشکلی پیش آمده چه کسی آن را حل کرده لینوس میگوید که زندگی اجتماعیش در آن دوران رقت بار بوده و بعد که احساس میکند منظور را نرسانیده اضافه میکند از آن هم بالاتر میگوید که البته 100 درصد هم منظوی نبودم ولی خب حین رشد لینوکس هم من کماکان یک آدم غیر اجتماعی بودم حتما متوجه شده ای که هیچ وقت تلفنی با کسی حرف نمیزنم همیشه همین طور بوده هیچ وقت به کسی زنگ نمیزنم اکثر دوستانم از آن تیپ هایی هستند که راحت به افراد زنگ میزنند ولی من نه میتوانی حد بزنی رابطه عاطفی چه خواهد شد اگر هیچ وقت به دختری زنگ نزنی آن روزها فقط چند دوست داشتم که گاه گاهی به خانه می آمدن. در میزدند و درخواست میکردند برای یک فنجان چای داخل شونند بعید می کسی در آن دوران متوجه لینوکس میشد و با خود می که این آدم دنیا را تکان خواهد داد احتمالاً هیچکس چنین فکری نمی کرد تنها فعالیت متناوب اجتماعی لینوس در آن دوران گرد همایی‌های هفتگی انجمن اسپکتروم بود که طی آن دانشجویان علوم دور هم جمع میشدند. این دیدارها هم معمولاً محورهای تکنولوژیک داشتند نگران چه چیزی بودم فقط زندگی اجتماعی شاید نگرانی واژه مناسبی نباشد بحث احساسی بود. گاهی به دخترها فکر می کردم. آن دوره لینوکس برایم چندان مهم نبود. هنوز هم تا حدی اهمیت چندانی ندارد. هنوز هم می توانم گاهی بی شوم در آن سالهای اولیه ورود به دانشگاه چیزهای اجتماعی خیلی مهم بودند. البته جریان اینطور نبود که مثلا قوز داشته باشم و نگران آن باشم که آدمها به من بخندند. مسئله این بود که من میخواستم دوست و این جور چیزها داشته باشم. یکی از دلایلی که اسپکتروم را دوست داشتم این بود که به من اجازه میداد بدون اینکه اجتماعی باشم، جزوی از یک ساختار اجتماعی باشم. روزهای جلسه یک آدم اجتماعی بودم و بقیه هفته پشت کامپیوتر. این جریان احساسی تر از همه چیز مرتبط با لینوکس بود. هیچ وقت به خاطر لینوکس ناراحتی نداشتم و هیچ شبی هم به خاطر آم بیخوابی نکشیدم چیزی که من را واقعا ناراحت می کرد و هنوز هم باعث ناراحتی من است خود تکنولوژی نیست بلکه تعامل اجتماعی مرتبط با تکنولوژی است مثلا ناراحتی من از نامه اندرو به خاطر مباحث تکنیکی مطرح شده در نامه و بحث های منتج از آن نبود اگر آن نامه را هر کس دیگری فرستاده بود از کنارش می گذشتم. مسئله این بود که او این نامه را به فهرست پستی فرستاده بود و من را من در مورد موقعیت اجتماعیم در بین آدمهایی که آن گروه پستی را میخواندند حساس بودم و او داشت به این موقعیت حمله میکرد یکی از چیزهایی که باعث خوبی و پیشرفت لینوکس شد بازخوردهایی بود که میگرفتم بازخوردها به این معنی بودند که لینوکس اهمیت داشت و من بخشی از یک گروه اجتماعی بودم تازه من رهبر آن گروه اجتماعی بودم شکی نیست که این مهم بود مهمتر از آن که بخواهم دربارهاش با پدر و مادرم صحبت کنم من بیشتر دقدقهٔ کسانی را داشتم که از لینوکس استفاده میکردند من یک حلقه اجتماعی درست کرده بودم و مورد احترام افراد آن حلقه بودم البته آن دوران اینطور فکر نمیکردم و الان هم نظرم کاملا این نیست ولی این باید مهمترین جنبه بوده باشد به همین دلیل بود که آنقدر تند به اندروتان بام جواب دادم خورشید در حال غروب کردن در اقیانوس آرام است و وقت ترک ساحل لینوس اصرار دارد که من ماشینش را برانم تا حس کنم که چقدر خوب به فرمان و پدال جواب می دهد می که از راه طولانی و پیچ و خم شماره نو به سیلیکون ولی برگردیم لینوس میگوید که جنگ ایمیلی با صاحب گروه مینیکس در نهایت به های خصوصی کشید چون ها آنقدر ناجور بودند که نمیشد آنها را به شکل عمومی ادامه داد جنگ چند ماهی متوقف شده بود تا اینکه تانپاو با ارسال ایمیلی به لینوس او را به تبلیغ پنج خطی یک نسخه تجاری از لینوکس در پشت جلد مجله بایت ارجا داده بود آخرین ایمیلی که از تانپاو گرفتم این بود از من می پرسید آیا واقعا این چیزی است که دنبالش هستم؟ آیا واقعا میخواهم افراد برنامه من را بفروشند برایش یک جواب یک کلمه فرستادم. بله و دیگر هیچ وقت از او ایمیلی نداشتم. تقریبا یک سال بعد که لینوس برای اولین سخنرانی عمومیش به هلند رفته بود به دانشگاه محل تدریس تان رفت تا از او بخواهد که نسخه از سیستم عامل طراحی و اجرا، کتابی که زندگیش را شکل داده بود برایش امضا کند. او بیرون در منتظر ماند ولی تنبانام پیدایش نشد. در آن تاریخ استاد جایی در بیرون از شهر بود و این دو هیچگاه با هم ملاقات نکردند. پایان بخش دهم از فصل دوفهم برای شنیدن دیگر، شماره های این کتاب صوتی به وبسایت آواسام مراجعه کنید.